چهارم از روش علف، به پ ت س برای اولویت گذاری استفاده کنید این یکی از قوی ترین شگرت های مدیریت زمان برای اولویت گذاری که می تونید یاد بگیرید زیبایی این روش در این حقیقت نهفته است که استفاده و کاربردش بسیار ساده و آسونه کلید دو برابر کردن کاراییتون در هر زمینه از کار یا در هر زمان از عمرتون اینه که مهمترین وظیفتون رو انتخاب کنید و بعد خودتون رو منضبط کنید که روی اون وظیفه کار کنید تا تموم بشه. تمام مدیریت زمان حول این موضوع میگرده که به شما کمک کنه مهمترین کاری که میتونید انجام بدید رو قبل از شروع در ذهنتون روشن کنید. راه تعیین بالاترین اولویتتون در هر لحظه اینه که به پیامدهای و انجام دادن یا انجام ندادن یک کار به خصوص فکر کنید. کار مهم چیزیه که اگه انجام بشه یا نشه پیامدهای بزرگی خواهد داشت. همه افراد بسیار کارا موقع برنامه ریزی و سازمان دادن کارهاشون دائما درباره پیامدهای احتمالی اونها فکر کنند. در روش علف به په قبل از شروع کارهایی که باید انجام بدید همونها رو فهرست میکنید بعد فهرستتون رو با دقت مرور میکنید و یکی از این حروف رو کنار هر کدام از موارد فهرست میگذارید مورد علف چیزیه که خیلی اهمیت داره چیزیه که حتماً باید انجام بشه چیزیه که انجام دادن یا انجام ندادن اون پیامدهای جدی داره کنار همه کارهای کلیدی فهرستتون یک علف بگذارید. مورد ب چیزیه که بایستی انجام بدید اما به اندازه مورد الف مهم نیست. انجام دادن یا ندادنش پیامدهایی داره ولی پیامدهاش جزئیان و زیاد هم دوام نمیارن. مورد پ چیزیه که انجام دادنش خوبه ولی هیچ پیامدی نداره. تلفن زدن به یک دوست خوب، بیرون رفتن برای خوردن قهوه، خوندن روزنامه یا گپ زدن با یک همکار همه کارهایی هستن که انجام دادنش خوبه. ولی اصلا پیامدی در کار یا موفقیتتون نداره. قانون اینه که هیچ وقت تا موقعی که یک مورد الف انجام نشده مونده یک مورد ب رو انجام ندید. هیچ وقت موقعی که یک مورد ب انجام نشده مونده یک مورد پ رو انجام ندید. در این مورد باید خیلی منذبت باشید. مورد ته چیزیه که به کس دیگه ای که میتونه اون رو تقریبا به خوبی خودتون انجام بده تفویض یا واگذار کنید. قانون اینه که باید هر چیز که میشه رو تفویض کنید تا براتون وقت بیشتری آزاد بشه که روی فعالیتهای علفتون تمرکز کنید. مورد سه رو هم کنار بگذارید. اینا مواردی هستند که اونقدر اولویتشون پایینه که میتونید کاملا کنارشون بگذارید و هیچ فرقی هم نمیکنه. بعضی وقتها همین اقدام منذبت کنار گذاشتن کارهای کم ارزش میتونه زندگیتون رو آسون کرده و به اندازه کافی وقتتون رو آزاد کنه که به کارهایی برسید که بزرگترین پیامتهای ممکن رو براتون دارن. وقتی روش الف ب پ ت، س رو روی فهرستون اعمال کردید دوباره به سراغ فهرست برید و کارهای الف رو به ترتیب اولویت مرتب کنید. کنار مهمترین کارتون الف یک بگذارید. کنار مهمترین کار بعد از اون الف دو بگذارید و به همین ترتیب بعد بلافاصله مشغول کار الف 1تون بشید و خودتون رو منضبط کنید که سر اون بمونید تا تموم بشه همین یک روش الف به به تنهایی کارای شما رو دو برابر میکنه.